بودن شلوارشو رو انسان میخواد بپوشه بلهنشینه بپوشه این شلوار نپوشید. نپوشید در روایت بایدت کسی ایستاده شلوارش رو بپوشه <تصفيق> خدای متعال به دردی او رو گرفتار میکنه که درمان نبشته باشه بله یعنی از این به بعد یه قبله یا باد همچم هم رامون باشه کهگه یه جایی و نبه هر دلیلی شلوارمون رو سامی جان حواست باشه هر جا شلوار رو در دوباره بپوشی رو به قبله نپوشی به گفته این روحانی یعنی اگه وقت جایی بودی مثلا شلوار رو در آورده بودی بعد موقع پوشیدن نتونستی بفهمی فهمی قبله کدوم وره احتیاط واجب اینه که پات نکنی تا اول جهت قبله رو پیدا کنی بعدا چیزیکن شلوار که میگم شامل زیر شلواری هم میشه هاشرم عوضت باشه آره این هم حالا سرد این شببه به حال این روز ها اینو ایناس از زیر شلواری هم بعض میشه اونم هست.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 هر هرچیو که داروردین پاتون میکنین یکم سخت به هر حال میدونم ولی نشسته خود سخته ولی تمرین کنین به شدنی خلاصه شدنیه خلاص دیگه توصیه نکنم ها یه وقتی هم که ببینین مثلا جای غریب هستین قبل نمام هم نیست سخت براتون این مراحل رو طی کنین اصلا در نیرین شلوارو چه کاری آخه یه بار دیگه گوش کنیم میشون چی گفتن یه بار دیگه چون مهم بودیم این مسئله. یه بار دیگه گوش کنین تاکید میخوام بکنم این مسئله رو پوشیدن شلوار به سمت قبله مکروحه شما میدونید که اولا دستور داریم در آداب لباس نمودن بله. شلوارشو انسان میخواد بپوشه آه. بنشینه بپوشه بله. استاده شلوار نپوشید نپوشی. در روایت داره آیا کسی ایستاده شلوارشو بپوشه خدای متعال به او رو گرفتار میکنه که درمان نداشته باشه بله من خواستم فقط دیگه تاکیدی کرده باشم که بدونین آفرین بزده.